حکایت گروهی حکما به حضرت کسرا در به مسلحتی سخن همی گفتند و بزرگمهر که مهتر ایشان بود خاموش گفتندش چرا با ما در این بحث سخن نگویی گفت وزیران بر مثال اطباءند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را پس چون بینم که رای شما بر سبب است، مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد، چو کاری بی من براید، مرا در سخن گفتن نشاید، وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشیندم، گنا.